نیاسای از آموختن یک زمان زدانش مرفکند برندر گمان چگویی که فام خرد توکتم همه هرچه بایستم آموختن یکی نغز بازی کند روزگار که بنش پیش آموزگار خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نکرند. سلام و درود دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ من همین رضا هدایتی راد هستم و خدمتون هستم با برنامه پنجره های روی مهتاب و استاد عزیز استاد فریدون جونیدی که برای ما از شاهنامه میگویند از داستان های شاهنامه میگویند راز و رمز هایی که در این کتاب بزرگ هست میگن. سلام مون سلام عرض میکنم شب شما بخیر روز بر شما روزگار شما خوش خدا رو شکر معلومه صداتون بهتره یعنی از صدایی فهمیدم که خالتونم بهتره بهتره البته هنوز به پایان نرسیده ولی بله خوب عجب ویروسی ویروس مرگ با خیلی جور عجب شما ویروس وحشتناکیه خب خاصه با پهلمونا نبرد کنه آره چه شعر قشنگی خوندی بگی در مورد این شعر آوازی این شعر برای که ما دونیم بدونیم که دانش پایان نداره هرچقدر پیشتر بریم دانش پیشتر از ماست و برتر از ماست بهترینه که فروتن باشیم و بوزیم گمان نبریم که اون چیزی که آموختیم و میدانیم این کار رو به پایان رسانده اگر نچنین باشه اون وقت روزگار یک بازی نغز پیش میاره که دوباره پیش, پیش آموزگار باید دوزانو بشینید بدونی که هیچ چی نمیدونستی اینجا فقط یک وام هست فام هست که این رو بشکافم در زبان پهلی رو بوده اپام بعد شد اوام در نظم نصد دوره اول به صورت اوام اومده که بعدن علف شد افتاد شد وام از اون سو اپام با تغییر په به فه شد فام که ببینیم در شانومه به صورت فام اومده یعنی قرز اوام وام فام اپام بشه همین ها اپام بوده بله و ما خود روزگار هم درس میگیم در خود شاهنامه هم اشاره شده خود روزگارم هم بهت درس میده یعنی تجربه روزگار بله روزگار بزرگترین آموزگاره منطقا معمولا مردم که سوار اصف مراد هستند نمیدونم که ممکنه که خب بالاخره نوبت اینا ها روز با اینها روزگاه هیچ گاه از گردش باز نمیواند و به همه درس میدوند خب ما من در همین آغاز تلفن‌های های برنامه خدمتون ارز کنم میدانم که خیلی از شما عزیزان میدانید منطقه ممکن شنونده جدیدی آمده به جمع ما اضافه شده ارزم کنم برای اون عزیزان شما تلفن‌های های ما 220 و بیست چهارصد هشتاد و پنج 588 و بیست چهارصد هشتاد و پنج و بیست و هشت دو صفر بیست و هشت دو صفر و شماره پیامک سی هزار پانصد و هشت سی هزار پنجاو هشت شما سؤالهای خودتون سؤالهایی که دارید رو میتونید بپرسید از استاد فریدون جنیدی ایشان پاسخ خواهند گفت تماس سریع سریعتر گوشه از طریق تلفن و که بتونن بچه ها کنن در پایان برانه ما اونها رو پخش کنید از سریع پیامک هم که پیامک های شما همجود دو ساعت قبل از برنامه آمده و در این بارم من پیامک های شما رو خواهم خوان برای استاد پایگاه تلارسانی ما ادرسه اینترنتیمون www.radiofarhang.ir از اقوام دوستان فامیلشون خارج از کشور هستند یا فارسی زبانهایی رو میشناسن که علاقمند هستند به برنامه های فرهنگی میتونید بهشون بفرمید از طریق محواره دو بخش داره محواره تصویر صدا اون بخشی که صدا هست رادیو فرهنگ رو با نام رادیو فرهنگ پیدا کنند و برنامه‌های رادیو فرهنگ و هم طور برنامه‌ی ما پنجره‌های رو, رو مخاطب رو بشناسن بشنود ما ما داستان امشبمون چی است استاد نبردی که از نبرد پهلوانان ناخوشا روح میده این نبردی است که هم با لها و فرشید ورد میکنه و بعد ویژن به یاریش میاد در اقضیه نبردیس بین دو پهلوان تورانی و دو پهلوان ایرانی گسته هم و فرشیدور گسته هم و بیژن از سوی ایران در حق و فرشیدور از سوی توران بل. رویه چند هستش؟ صفحه چند؟ جلد چند؟ بیت نخصی 119 است و دنبالش 122 آغاز میشه یعنی از رویه 119 جلد سوم دیگه درست هست میکنم؟ بله بله جلد سوم. شما که الان شاهنامه ها رو باز کردید داستان رو متوجه شیدین در اون شاهنامه ای که خدای واوی دکتر فیدون جنیدی استاد فیدون جنیدی ویرایش کردن جلد سوم روی 119 هست. موسیقی می شنویم داستان شاهنامه رو از زبان استاد فیدون جنیدی می شنویم. از پشت ساز موسیقی من تو سماع تاب رو که فرضش اینا کنم. نوکرین که یک بزرگواری از کرچ با 81 سافت سین تلفن فرمودند که یادشون رفت که نامشون رو بگم و بسیار سخت تحت تاثیر بودن میگریستند و از اینکه من در یک از برنامه ها گفتم که ما همه فرزندان فردوسی هستیم سختشون ایشون برفرون بودن و میگریستند و یعنی گرگی شوخ بعدشون ایشون از من خواستند که در هر برنامه چند تا واجه رو بشکفم تا به این ترتیب اون در آگاهی های تازه بهشون داده باشه خب حالا من یه واژه رو میشکفم تا ضمنان ببینیم که این واژه تا کجاها ادامه پیدا کرده ما در هست. زبان ابستویی که کوهندترین زبان آریایی جهان هست و یه واجهی داریم ره ره. یعنی با سه نقطه رفه یعنی گردونه این واژه با پسوند یه نسبت پیدا کرده این پسفند یه الان هنوز در زبان فارسی هست مثلا ما میگیم شهر شهر, شهر یه یا مثلا قیطریه منظریه زینبیه حسینیه باید اینو همه یه پسفند نسبت از زبان عبستایی باقی موده که یه در زبان ارمنی تبدیل به یان شده میبینید که بیشتر این نسبت ها در زبان ارمنی مثلا قازاریان، لازاریان باغدساریان در مده. خوب خب حالا این رفت با پسفند نسبت ساز یه میشه رفت یه. یه یعنی چیزی مربوط به گردونه اون وقت از اونجای که پیشتر از اینکه گردونه پدید بیاد در جهان راه مفهوم نداشته چون جانوران از هر جا میتونن از میون ده شرکت کنن انسان ها هم همینطور راه وقتی موجودیت پیدا میکنه که گردونه پدیدار میشه برای که گردونه بود از اون راه مستقیم صاف بره تا اینکه چرخش اینو نشکنه ده. بنابراین اینا یعنی چیزی مربوط به گردونه که در پهلوی شد راس و در فارسی شد راه چون سه بهه تبدیل میشه بنابراین این خود این واژه نشون میده که اختراع گردونه از آن ایرانیانه و اختراق راه هم یعنی راه رو هم ایرانیان به جهانیان دادند حالا این راه در زبان انگلیسی میشه رود میبینید که از راه گرفته شده رود در زبان فرانسوی میشه لغو یعنی حالا به تلفظ فرانسوی نگیم رو بگیم خب رو با افتادن د از رود انگلیسی یعنی راه. در زبان آلبانی روتو و در زبان ایتالیایی رت رتح همه این ریشه رح و رستیه فارسی گرفته شده. اون وقت از این طرف ما در زبان عربی داریم استرات اگر این ساده اولشو برداریم نگاه کنید رات رسه هنوز از اینجا گرفته شده. یعنی در همه زبان جهان واژه راه از رسه ایرانی گرفته شده که به معنی گردونه است. از طرفی یه پیشوند به این میخوره میشه ار, ار یعنی پیشرونده یعنی در پیش پیشرونده یعنی گردونه پیش رونده. این در تلفظ محمود فارسی شد ارده که بعضی جوها اونو ار و ا تبدیل میکنن تبدیل میکنن به ارده و بعد با عین با می در حال که این کوملان فورسیس بعد این تبدیل شد به ارابه در زبان مثلا عربی معرب شد شد عربی ارابه همه اینها برگرفته از رسای اوستاییس و كهنترین گلدونه های جهان در ایران ساخته شده اگرچه قربیان اصرار داشتن که در سومر ساخته شده بلی بعدها اراده های در ایران پیدا شد یعنی اون رهزه های سومری چرخش همراه دو تا چرخش همراه با اون مهوری که اینا رو با هم ورک کرده با هم میچرخه در حالی که رهزه های ایرانی اون مهور سا ساکنه و چرخ ها خودشون به نوبه خودشون میچرخه و شما امودین این کار خیلی نیروی از نیروی استراتیگی میگیره و به حرکت به کمک میکنه یعنی چیزی خیلی پیشرفته ایه اینم است از طرف ایران به جهانیان چه گردونه که تبدیل شد بعدا به کارو تبدیل شد به ماشین و چه راه که تبدیل شد به بزرگراه اینا از آن بیاد بیاریم که گودرز پهلوان ایران پیران پهلوان توران رو شکست داد و دو بیت آخرین این بود که سرش رو همیخواست از تن برید چونان بد کنش خیشتن رو ندید در به بالینش برپای کرد سرش را به دن در جای کرد سوی در خیش بنهاد روی چکان خون ز زبازوش چون آب جویی بزرگان برای پهلوان آمدند، پراسخنده بود شادمان آمدند. دنباله دوستان برفتند لحاک و فرشید ورد بدان دیدگه ورد دشت نورد، بران دیده بر زار و جوشان شدند، زخون برادر خروشان شدند، همی زار گفتند که این نر شیر، سبه پیران، سوار دلیر، چه بایه است آن رادی و راستی، چه رفتن گیتی چنین خواستی؟ کنون کام دشمن برآمد همه، به بعد بر تو گیتی سر آمد همه، که جویت کنون در جهان کین تو، که گیرد کنون راه و آیین تو؟ زگودر چون خواست پیران نبرد، چون این گفت با گرد فرشید ورد که اگر من شوم کشته بر کی شما کس مواشید پیش سپاه. ز گودرز خواهد سپه زینهار شما خیشتن را مدارید خار. یعنی از زینهار خواستند در خودتون احساس خاری نکنید چون این قرار رو ما با گودرز گذاشتیم. همه سر به سر زار و گریان شدن چون بر آتش تیز بریان شدند به نزدیک لحاک فرشید ورد رفتن با دل پر از باد سر که اکنون چه سازیم زین رزمگاه چه شد پهلوان پشت توران سپاه یعنی رفت پهلوان پشت توران سپاه رفت چون گفت هر کس که پیران و گرد جز از نام نیکی ها نبود ببینید این خیلی مفهوم بلندی داره ما هفته پیش یه پیام داشتیم که از یکی از روستاهای ایران اینکه از شهرهای جنوب ایران به ما زنگ زدن گفتن که اگر کسی خیلی دانا و آگاه باشه ما میگیم مثل پیران ویس نمونه بله بله میگنم خیلی مهمه یعنی ایران در ایران دیگه توران که از بین رفت دیگه پیران نامی نبره تاریخ توران هم بر هم نبردی شد بعدها هیونان آمدن بعد هپتال ها آمدن، و بعد از اونم که قبایل ترک و زرد و این آمدن دیگر اصلا در اونجا این تاریخ اصلا مفهوم نتاجه اما در نظر ایرانیان در یه شهری یه روستای یه کوستانی این نام باقی مونده باشه این خیلی مهمه درست این داوری شاهنامه است چون این گفت هر کس که پیران و گرد جز از نامونیکی که زگیهان نبارد چون این راند بر سر روزگار که بر کینه کشت شود زار و خار. ز پیمان نگردند ایرانیان. از این در کنون نیست بیمزینان. این مهم اینه که در انجمن میستان سپاه توران وقتی که برای گرفتن از این هار خواستن با همدیگه مشورت میکنند اینها میدونند میدونن که ایرانی از پیمان خودش بر نمیگرده. این خیلی مهمه. و پیمان و راستی که نماد کیشه مهر بوده کیش ایرانیان و تورانیان و البته اروپاییانم هم که با رفتن با خودشون کیشو بردن ولی دیگری کردند. کردم. بر هم درز سالار پیران شویم زراغ بیابان به توران شویم. راه بیابان بیابان اون بخشی است از... که بین دریای مازندران و دریای خارز و اورال هست اه... که اینجا من چند بار در باره این بیابان صحبت گفتم. جایز کتابستان ها همه خشکه و بیابه و منطقه تا خرداد ماه اینجا باران و فراوان میاد که برکه ها رو پر میکنه و گیاهان در اینجا رویده میشه درست مثل بیابان آریزوناس در آمریکا. مشاهد اگر اردوتور رو هم بگیرن درست روبرو اون قرار میگیره از نظر کره زمین این راه تورانیان بوده که چون میتونستن که از اینجا خیلی زود رعداس یورش بکنن و به ایران برسنن و حالا برای برگشتن دیگه تورانیان روی این ندارن که از روستاها و شهرهای ایرانی بگذارن اگرچه از اون که اومده بودن از طرف بلخ اومده بودن ولی اکنون راه چالاشن همی بود که از راه توران برگردن که با ایرانیان رو برنشن شدشگر چون این به بزن... بر ما کنون آر نیست سپاه است بسیار و سالار نیست شنش کرد چون این پاسخ ها دو پرمایه از جای برخواستند به پدرود کردن گرفتند ساز بیابان گرفتند تو راه دراز. به رهبر از ایران سواران بودند میگه با آن آن نامداران بودند یک بیت رو اینجا من در لیراش پسین میبینم که افسده است خوشبختانه چند نفر من زنگ زدن هفته گذشته که من چند بیت رو نخونده بودم به من یادآور شدن. مثل یک سفر رو من ندیده گذاشتم. نشانه دقت شنوندگان ماست که با آوای فردوسی با هم همراه میشیم. من خیلی من شو... شاهنامی شما با توجود به باز... شما بله. با... با... با... همین ها رو به من گفتن که چند بتو رو نخوندیم. من خیلی هم و خیلی شادمانم از این بابت. برهبر از ایران سواران بودند، میگه‌بان آن نامداران بودند. یکی ناصغالیدشون جنگ خواست که خون، که از خون زمین گشت با لاله راست. یعنی قرمز شد، زمین قرمز شد، هم رنگ لاله شد. خبر شد به گودرز که از توریان یکی رزم بخواست اندرمیان همه مانده بودند ایرانیان. شده سس و سعه ز آهن میان این مونده اینجا در شاهنامهشون میده ب کسانی که میگن خسته نباشید اینجا خوشدار میده که ماندهبات بگن اگر کسی کار زیاد کرد بهش بگن مانده نباشی. پاسش هم در مونده نباش. اما اگر بخوام بگن همطوری که بگن بگن, بگن و در بر شما چون دیگه کسی که کار نکرده که مانده نیست که بهش بگن مانده در کسی در این کار هست میشه به گفت مانده نباشی. همه مانده بودند ایرانیان، شده سست و سوده ز آهن میان، ندادند پاسخ جز از گسته هم که بودند در آورد شعر به دو گفت نیکختری تو زهود، یعنی گودرز بهش گفت که شیری و بدخواه تو همچو گور. تو بشنید بیژن که گسته هم رفت، زلش کرد با آورد لحاک تفت، نشست از بر دیزه راهجوی دیزی یکی از نامهای اسبه نشست از بر دیزه راهجوی به نزدیک گودرز بنهاد روی. چو چشمش به روی نیا برپتاد، خروشید و چندی سخون کرد یاد. نخوب آیا به پهلوان از خراب که هر نامداری که فرمان برد، من را به خیره به کشتن دهی، به خانه به چرخ فلک برنهید. کنون گسته هم شد به جنگ دوتن، نباید که آید بر اوبر همه کام و ما باز گردد به درد چو کم گردد زاد مرد زادمرد زادمرد یعنی آزادمرد ایرانی به گردان چنین گفت سالار شاه که هرکس که جوید همین نام و گاه پس گست هم رفت باید دمان مرو را بدن یار با بدگمان یعنی در جنگ که با دشمنان رخ داده با یارو باشن. به گودرز پس گفت بیژن که کس جز از من نباشد فریاد رست این یکی از رمفای بزرگی شاهنان است که چرا بیژن میخواد یار هم باشه و در کتاب داستان ایران خواهم شد دیاری یاری یا مرا رفت باید که از کار اوی دلم پرزه در دست و پر آب روی دو گفت گودرس که شیر مرد نه گرماز مودز گیتی نه سر نبینی که ما این پیروزگر به کار مشت دابتوند. ای پسر، بمان تا کنون از پس گستهم سواری فرستم چو شیر دو که با او بود یار گاه نبرد سر دشمنان اندر آراد بگرد. بدو گفت که ای پهلوان خردمند و بیدار و روخن روان کنون یار باید که زنده است مرد. نانگه کجا آزو برارند گرد گسته همهنو زنده است من باید به یاریش بعد اینکه اون مرده شد و رفت از جهان بعد این یار اون رسیم به فرمایی تا من به تیمار و او اون جورمدم کمرتنگ بر کار روی به فرمایی ایش داده با این حال باز و تقاضا میکنه با این حال باز منتظره که فرمان او است. فرمان هم نیا و هم فرمان سبه سالار ایران به بدو گفت گودرز تا پش اگر نست مهر تو بر جان خش ما همه اینا رو خلاصانی خوندم یه بایی به دو گفت گودرز تا پش اگر نست مهر تو بر جان خش <shove> <eurs> دوستان اینجا گسترسته میشه به لحاک و فرشید برد برمیگرده شما سخنی داری با من؟ پیامک ها اگر اجازه بدید یک فاصله اینجا بیریم شما میخود یه مقید نفس تازه بفرمایید اجازه بدیم پیش از پیامک ها من یه جا. پیام میشیندم از یکی از شایدان خودم به نام نگینه فرهنگ دوست این دختر ایران گفت من چندین بار برای شما ام دادم خونده نشده گفتم چی گفتی گفت پرسیدم که بزرگترین دشمن ایران چیه من بیدرنگ به اون دختر ایران گفتم بزرگترین دشمن جهان دروغه دروغه که سر ماهی همه بیچاره‌ها بدبختیه من تا ما نباید فکر کنیم که دروغ فقط اون چیزی که به زبان میاد هران که بر خلاف روشی جهان هستی و فرمان خداوند هست اون دروغه مثلا فرد بخمید که اگر یک گیاهی سبزی زرد بشه این یه دروغی جانه اینو کا... کاسه و زردش کرده اون دروغ اون چی بوده؟ سم بوده؟ یا شکستن بوده؟ یا طوفان بوده این رو از ریشه کنده چیه؟ یه چیزی هست دروغه دروغ تنها به گفتار نیست هر چیزی که مخالف فرمان جان جهان و فرمان یزدان باشه او دروغه از طرف جنگ ها خودش یکی از بزرگترین دروغ ها هست برای ما در متون پهلوی داریم که احریمن از چیزهایی که پدید آورد یکی در حقت دروغ اناشتی یعنی دروغی که جنگ ازش اناشتی یعنی ناشتی یعنی قهر دروغی که ازش جنگ برمیخیزه و شما می‌دونید که در تیره های جانوران هیچ تیره ای نیست که خودشون با خودشون بجنگند این اصلا یه دروغ غیر از انسان بدبخت بیچاره که در حقیقت قرخ شده در خواهش ها و هوا و ها نادرست خودش در طول هزارها ها حالا روبه رو هم میستن به هم دیگه جنگ میکنن اونی که سر اینی نبوره اونی که دست رو اونی که شکم رو پاره میکنه این بزرگترین دروغه که به نام دروغ اناشتی ازش میشه. و خب بنابراین جنگ که رخ داته به پیرو همین دروغه تو خوب ما دشمنان خیلی بزرگی داشتیم یکی اسکندر بود که تمام آثار فرهنگ زندگی ما رو از بین برد و سوزند و دانشمندان رو سوزند و بعد دروغ چنگیزیان بود و بعد اوزوکا بود و دیگه درست بلاخره عرب که حمله کردن اینا همه برای سر جنگ پیش اومد منطقه ما یه دروغ هم در اندرون خود می اون دروغی که ساسانیان بر حقیقت ایران رو به باد دادن. چه شما ساسانیان با دروغ و با کودتا حکومت رو از سلسله شریف و خوب اشکانیان گرفتن. عشقانیان بارها در اینجا صحبت کردیم که یه سلسله مردمی بودند. و ساسانیان اینا گرفتند گرفتن و بعد به یاری موبدان ایران رو به جایی از زحف رسوندن که ما از هشت زار شکست خوردیم پس این دروغ از خودمون بوده نباید ما فکر کنیم که دروغ همیشه از بیرون میاد این پستش خیلی خوب بوده که نگینه کرده و منم در اینجا از موقع استفاده کردم که گفتم حال شما حالا شما نبخون یه مطلب دیگه هست خواهش میکنم ببخشید این خانوم من ندیدم حتما میخوندم چون سوال خیلی امیق درستی هست و سپاس از استاد جنیدی که این رو فرمودند. هزار درود بر استاد جنیدی مرد فرحیقه ایران و موجری شادمان و مهربان پن هزار, پن هزار پیش گوتیان از کردستان کاسیان در کاسبیان دولت بنا کردند. پنج سده بعد برمیان رودان و کل جهان کهند به مدت هشت صده حاکم شدند. پس از تصرف ایران به دست همورای... همورابی. همورابی شاه بابل کاسیان بابلیان را بیرون راندند آیا این حوادث با ذ خاک و فریدون همخانی ندارد با سپاس زریر از پارس؟ درود بر زریر که بعد باز با دیروزم با دیروز با شا... بنیاد تماس گرفته و شنا درش پرستادن این مرد مسلط بر خود گفتود نه من زیاد؟ اولن نابینا نیستم یه معلولیتی دارم بود. بعدم که نمیخوام که کاملا شما مجراو کنم باشه یه مقدارشو خواهم فرستاد حالا من نمیدونم هر چقدر هست همت کرده منم هم امروز یک امضا کردم یک کتاب نامه قهرمانی که از چون گفته بود من خط پهلوی می روستم. از رو اون پهلوی بیاموزه و بیاد بده چون این کتاب خودش آموزگارم هست. امیدوارم یه روزی در اونجا برای خودش یه مع‌فلی تدریس زمان پهلوی فراهم بکنه این مطالبی که گفته میشه پس از فریدون و زهاک داستان استیلای زهاک با در حقیقت اون زمان شینوسی که ما پیدا کردیم 7000 سال پیش بوده و 1000 سال ادام پیدا میکنه تا این که در 6000 سال پیش فریدون پیروز میشه متو بعد از اون باز این کشقوس ها بوده که از جمله با سیانوگوچی ها در غرب ایران این حرکات رو داشتن. پس از لحاک و فریدونه شما برنامه پنجره های روی محتاب رو میشنوید استاد فریدون جونیدی از شاهنامه از داستان های شاهنامه فرگوسی برای ما میخوانند با تلفون های 220-485 220-485 220-5288-2-0 دویست و بیست پانسد و هشتاد و هشت دو صفر و شماره پیامک سی هزار پانسد و پنجاه و هشت میتونید تماس داشته و باشید با تلفنها ها سوالات خودتون رو بفرمایید، بفرمایید از طریق پیامک هم میتونید سوالات نوشتاری خودتون رو واسه ما پیامک کنید و سوال چند تا دوستان پرسیدن چطور میتونیم با آقای عصاد جنیدی صحبت بکنیم میشه تو میتونیم شاهنامه هیشون شماره تلفن بنیاد نیشاب رو خوندن که همینجا من عرض میکنم هشتاد و هشت نود و شش بیست و هفت هشتاد و چهار یه بار دیگه عرض میکنم هشتاد و هشت نوود و شش بیست و هفت هشتاد و چهار تماس زودتر بگیری تالات خودتون رو مطرح بفرمایید که دوستان آماده کنند و استاد جنیدی پاسخ میانم پرامک زیادی از شما اومده که من سعی میکنم تا اونجا که میشه در برنامه هست برای استاد بخوانم ایشان پاسخ بگویند درود بر استاد جنیدی و آقای هدایتی زبان عوستایی قدیم تر است یا زبان سانسکریت آیا زمان دقیق مهاجرت هندی ها مشخص است؟ شاد باشید پیروز باشید جهان غرب همه یک جانبه داره کوشش بگونه تا بخواد بگه که زبان سانسکریت کهانتره ولی ما باید داریم که هندیان از ایران جدا شدن و رهاورد فرنگی ایرانی رو با خودشون بردن پس نمیتونه که زبان زبان سانسکریت کهانتر زبستا باشه در برسیان که کردن یک اندکی نک قلم رو خم کردند که آره زبان گاتها مثل زبان سانسکریت کهانه اما خوب پیداست که خرد ایجاب میکنه که ما بدونیم که هندیان با زبان و فرهنگ ایرانی رفتن منتخب دیگرگون شد فرهنگشون اما بسیار از کتاب ها و داستان هاشون تقیباً مایه در ایران داره و زبان که اصولاً مایه در ایران داره و زمنان قربیان گمان دارن که حدود 4,020 سال پیش تا 4,500 سال پیش هندیان از در سند رفتن به از ایران رفتن به هندوستان پجروهش ما که بر بنیاد یافته های زمین این تاریخ رو اندکی جلوتر میبره یعنی پیرامون 5000 سالش میکن. با عرض سلام و مانده نباشید الاتیشون نوشته خسته نباشید تو شعریم که شما اون بخشم که فرمودید زمانی که یک نفر کار میکنه خسته میشه بهش میگن مانده نباشید اونم جواب باید بده در مانده نباشید با عرض سلام دنبال اون بیستم که در دوازه خوده بیگم <تصفيق> <تصفيق> <تصفح> <تصفح> آفرین <آفاره. تصفح> <تصفح> با عرض سلام و مانده نباشید خدمت استاد جنیدی میخواستم معنای کلمه ویزنه را بدانم نام روستایی در گیلان است با تشکر آقا یوسف شاد باشید درباره در بالای ها نام بسیار شتاب فرزید و معمولا کسانی که شتاب میبرزن از روز ظاهر نام داوری میکنم مثلا فرض کنید که یه زاهر داوری ظاهر برای شهر گرامی تبریز همه میگن که یک شازاده خانم عرب بوده اومده اونجا تبش ریخته پس منوانین اینجا تب میریزه در حال که همین ما اکنون در تبریز ممکنه صد نفر کسی داشته بشین که تب داشته باشن این, این درست نیست چنین نام یعنی گزارشی برنامه ها یا من یکی رو دیدم که در یه مجله نیشد استاد دانشگاه بود نیشد که شیراز یعنی جایگاه شیر چون در عربی داریم حج و حجاز بنابراین شیراز هم یعنی جایگاه شیر این به احواز هم جایگاه آهو آخه این خرد ایجاب میکنم و آهو ها همه توی شهر به بنابراین احواز و شیراز توی یه جایی دیگه باشن که شکار نداشته باشن این متاسفم که یک کسی اسمشم استاد دانشگاه هم بودی چنین داوری کردو یه خود رو باید دقت بکنیم و در باره ویزنه ما الان شنوانده گرامی از که نوچ هفته پیش تلفن زد که من گفتم که کهش اعتمالا از که و گاه میاد بعدا منتقل شدم به این که ممکنه پیشبند بند باشه که در واژه که ریزک هم هست و به صورت قه در قه فر روخت آمده. به صورت قه در قهستان هست که بعدا اونو چون قهستان خوندن گمان بردن که این سمال خراسان در حالی که قهستان جنوب خراسان یعنی خراسان جنوبیه، قهستان یعنی قناتستان، کاریزستان و جا میدونو که امیخترین گسترده ترین شکفتنگ دست انگیزترین و کاریزهای جهان در اونجاست که اینجا نامش قهستانه این رو این موضوع هم استاد فیروز منصوری پیدا کرد که نخستین بار در یک مقاله خیلی خوب نوشت و ما مدیون او هستیم که که احتمالا همون قنات باشه اگر نوج در زبان بله چی معنی داشته باشه اون وقت اون شون ما مثلا دوستو داریم کهریزک ناگاهانی یا قه فروخ یعنی قنات فروخ. اگر نوج معنی دیگه در بله چی داشته باشه بعدا این دوست گرانی دارم دیگه منم برخوردار بشم با سلام به استاد گرامی و موجزی محترم این درست خونده نمیشه, نمیشه. نمیدونم چرا این ببخشید من این رو درست نمیم آه الان درستش کردم این نصر کار رو منم کار با این شما همین همین من هیچی بلد بسند کمپیتور رو برانیستم روشن کنم نه این یه موقعی قاتی میکنه با درود بر استاد فرزانه و مجری توانا استاد یامی من دانشوی سال آخر دکتری فیزیک هستم آشنایی با سخن پروار و به ویژه نگرش شما من و همسرم بر بران داشت تا در کنار درگیری بسیار پژوهشی، درگیری‌های های زیاد بسیار پژوهشی، دفترهای چند از نگاشتهای شما را گردآوری و بخوانیم و پاسخ بسیاری از پروسش که از دیدگاه باختری ها برمیخواست را در سخنان شما بیاویم اکنون به ایرانی بودن میبالیم شاد باشید فرزندان شما آیو و ورن درود بر شما این خانواده شاد و شادمان که امیدواریم با گسترش خود با داشتن دو فرزند دیگه برای ایران در آینده ایران رو تزریق بکنن من خیلی شادمان شدم درود نام امید آیا نام اصیل ایرانی است ریشه آن از کجاست شاد باشید درود امید کاملا ایرانی است امید بوده در پهلوی و در خراسان امید میگن الان در تویستان افغانستان امید میگن که در فارسی تهرانی شده امید کاملا ایرانی خیال تا راحت باشم خب بفرمایید نورد گسته همو بیزن با فرشید و زحاک نه لحاک لحاک این که نام دیگه نامه فقط نامه نام چه از رود لحاک و فرشیدورد گذشتن پویان به کردار گرد یکی بیچه دیدند دعا آب روان بدان اندرون سایه کاروان سایه کاروان یعنی جایی که کاروانیان میان اونجا از افتاب در امان میان یعنی کاروانسرا مي... کاروانیان میان و از سایه اون برخوردار میشن حتما نه باید یه سایه بون باشه مثلا فرض کنید از چند تا چوب درختی بالا سخوی داشته نه خود سرا را میشه گفت سایه کاروان و میدونی که هم ویژه ایران بوده و در تمام راه ها این کار رو میکردن کاروان سرا درست میکردن و خیلی از اشخاص در اندرزشون یعنی وصیتشون میگفتن که کارموسا رو درست کن برای کسانی که در بین راه هم میرن بتونن آسایش درست کن. نامه، وصیت اندرز اندرز و فارسی هندرز, هندرز فرسی، یعنی به هم پیوستن. درز یعنی درز هندرزنی یعنی به هم دوختن، به هم پیوستن. یعنی به هم پیوستن, یعنی پیوستن گذشته کسی که در اندرز میکنه با آینده فرزندانش. هندرز هندرز بعد کم کم چون هندرز با پندم هم همراه بوده چون حالا پدر یا مادری داریم بیره پند میده به فرزندانش کم کم شد پند و هندرز بعدا هندرز منی پند گرفت حالا نه اینجور نیست هندرز یعنی یعنی در شانوما همه جدار بوتونو پهلاویم همه جا هندرس یا هندرز به منیه وصل گذشته با گذشته با آیده هندرز یکی بیشه دیدن در آب روان به دو اندرون سایه بیا بدان اندرون سایه کاروان به بیشه درون مرگ و نخچیر و شیر درخت از برو و سبز و آب زهر به نخچیر کردن فرود آمدند اوزان تشنگی سوی رود آمدند من گفتم که این جور نگوشویم این الان تو دره هزار یه درهی هست که از شهرود میره به طرف کتل در جای نه هزار همیشه یاد داشتم حالا الان من خیلی در... قشنگه خیلی بله بزرگ بله این جای جنگیشون اونجاست نه برف روختند آتش روشن کباب بخوردند و کردند سر سوی خواب بارومت شب تیره شد ماهتاب این برآمد نخستین متعلق به معتابه چون شب تیره شد معتاب برامد دو غمگین سرندر نهاده به خواب رسیدند دران جایگه گسته هم که بودند یاران توران به هم نوندس به او بوی اسبان شنید نوند یعنی شتابان هم به منی اسب به تنهایی نوند گفته میشه هم اسب نوند میشه گفت نوندس به او بوی اسبان شنید بر آورد و اندردمید یه کشید روی اصب شنید و برای اونا در حیقت میان خود جانوران با همدیگه درود گفتند به این ترتیب سبک اصب لحاک همزین نشان خروشی برآورد چون بیهوشان شانمل شفتتنگیست کار, شانم کار جهانم. شما با نه بلدم کردی که به در منده باشه اونها همچین بلند ای نیست هم خوروش... افن... بله این برابر چون بیوشان. فقط پاسخ اما خیلی پایین بوده سوی لحاک فرشید ورد بیامد وزان خواب بیدار کرد. پدید آمد از دور پس گستهم هم. ندیدند با او سواری به هم. گرفتند یک بادگر گفت و که یک سوی ما نهاد است روی. گوریزان بباید شد از پیش اوی مگر کندر رد بدین دشت روی این جنگ گریزی که در زمان اشکانیان بود اینجا اینجا همون کار دار میشه میگه ما گریزان میریم تا او بیاد به طرف ما باید برگردیم بیا آمد چون ازی ای ایشان رسید چون شیر جیان ای برکشید برای ایشان ببارید تیر خدنگ چو فرشید در آمد به جنگ یکی تیر زد بر سرش گسته هم که با خون برا مغزش بهم نبون گشت و هم بر زمان جان بداد شدن نانور گرد ویسه نژاد ببینید شاهنامه با اندوه داره میگه که اون گرد ویسه نژاد که در حیقت برادر پیران بود رفس با اندوه داره سوت